به نام خدا با عرض سلام و ادب احترام خدمت شما گرامی در قسمت هیجدهم برنامه رخداد در خدمت شما هستیم در این قسمت هم در خدمت جناب آقای ایران مهر هستیم و در پایان قسمت 17 هم یک شروع کردیم یک بحثی رو در مورد نوع نگاه ایرانیان به مقوله تولید مثل و مقایسه آن با نگاهی که در غربیها چه یونانیان باستان و چه متفکرین بعد از دوری روشنگری داشتند یک مثال روزمره ایران می فرمودند از کیخسرو که تبارشون از افراسیاب و که که مشخص میکنه که حکیم عبور قاسم فردوسی این دوتا رو پنجاه پنجاه تلقی میکنه در حال که قرب تازگی به این مسئله رسیده بره. که دانش جنتیکی که پنجاه پنجاه هستش تاثیر جنوم به اشتراک گذاشته میشه بره. یک مثال دوم و اون مثال اساسی که شروع کردن در مورد بحث جمشید هستش پادشاه پیش دادی. پیش دادی در خدمت شما هستیم جناب آقای ایران مهر در طرح بحث بفرمایید و در خدمت شما هستیم خواهش میکنم زنده باشید چون شما در نشست پیش فرمودین که ما بعدا وارد این مباحث میشیم و تاریخی اینها رو, رو برد... تاریخی رو اصلا بحث میکنیم چون این چیزایی که میگیم خیلی جای مناقشه و بحث داره این حرفایی که ما میزنیم الان مثلا 90 درصد دانشگاه تهران این حرفایی که من الان ارز میکنم از خودم هم, هم نمیگم و اینا اصلا قبول نداره چون اینا رو افسانه میدونن و افسانه رو معادل میت و میتولوژی غربی میدونن اصلا میت یعنی دروغ چیزی که واقعیت نداره در صورتی که افسانه و حتی اسطوره در زبان فارسی اصلا همچی معنی نمیده که واقعیت نداره واقعیت واقعیت داره ترجمه کلمه استوره در واقع اون اشتباه اصلا اصلا, اتفاقه. اصلا حتی افسانه هم نیست چه بلد. برسه دیگه به استوره, استوره. استوره یک خط یک حلقه پیوندیه میان افسانه و تاریخ یعنی ما تاریخ بیزمان رو اسطوره میدونیم اون میتولوژی حتی برابر افسانه هم نیست چون افسانه خودش یک بنیانهای باورهایی رو میذاره که بعد جهان واقع روی اون ساخته میشه مثل اون کره زمینی که رو شاخ گاوه حالا بعد ما وارد اینا میشیم که همه اونو مسخره میکنن میخندن میگن مثلا قدیمی یا نمیفهمیدن چی میگن نه اتفاقا خیلی هم میفهمیدن چی میگن تو قالب افسانه اومده که بمونه حالا بله. ما بعد وارد اونا میشیم من میخواستم بگم که این چیزایی که میگیم حالا چون الان میخوام یه تاریخی رو ذکر کنم که الان اولین کسی که شنونده از دانشجو دانشگاه تهران باشه این برنامه من بگم این تاریخ جمشید بوده یا میخنده بر حال یا مثلا در روزی شاید بکنه با خودش که آقا این چی گفت اینا اما خب اینا همه رو ما بعدها واردش میشیم و رو ارائه میدیم ما دو جور علم داریم آقای دکتر علوم نقلی و علوم عقلی اقلی. شما میگید داریش فلانز وقت بوده اینجوری بوده سال 500 و چند پیش از میلاد بوده اینم سندش اینا میشن علوم نقلی خیلی خوب بعد علوم عقلی کجا میره؟ بله بس علم منطق کلام میشه نباشه ما با علوم عقلی چیزهایی که اسنادش در دست نیست میتونیم اثبات کنیم با. این داستان جمشید اینطور که بنده ارزمی کنم برمیگرده به آخرین یخبندان زمین آخرین یخبندانی که روی کره زمین رخ داده حدود هیفته هزار سال پیش تا دوازده هزار سال پیش به پایان میرس این یخبندان میخواسته بروز کنه ما در اسطوره داریم که وقتی این به جمشید گفته شد که ور بساز یعنی پناهگاه پناخ زیرزمینی بساز که یخبندان سختی در پیشه و همینطور هم شد و اینها ناشار شدن سه بار به طرف آفتاب میدونین که شما وقتی در کرنیم کره شمالی زندگی کنین آفتاب یعنی جنوب بله دقیقا سه بار به طرف آفتاب برو و میدونیم که خاستگاه اسطوره ایرانی تاجیکستان نیست کوه دماونده یعنی تمام بازگشت ها به کوه دماونده، تاجیکستان که دماوند نداره که، آسیه میانه کجا بوده؟ همین فلات منظوره و البرز یا کوه هرایتی، این مهمترین خاستگاه استوریه ماست. از این حدود ها و هر جای دیگه که تو فلات بودن به سمت جنوب ناچار میرن دیگه، یخا داشتن از سمت شمال میامدن ایناه زمینه که به پایین میرفتن الانم میدونه که شهرهای زیر زمیننی زیادی در ایران موجوده بعضیش پیدا شده پیدا میشن بعضیش بعضی بعضی شهرها هستن ساعت تا سیلک یا مارلیکن تا ده زار۱ هزار, سال، هزار سال تاریخ دارندن دق اینها به بر حال سه بار به سمت بچون دوره تابندگی رو طی کرده بودن جمعیت زیاد شده بوده دورایی که میگن سه بار جمع شد از او خواست که زمین رو گسترش بده که این آدم جا پیدا کنند بتونن توش جا بگیرن و اینا است است بعد با توضیح داده بشه که یعنی چین ها حال این یخبندان آغاز میشه در داستان و اسطوره این اصطوره یخبندانی سخت و دراز در همون زمانی که گفتیم آغاز میشه باشندگان فرات ایران حالا ما از این داستان یکی از داستانهایی که تو این فرگرد دومش متوجه میشیم که بر وجود تخمه جداگانه آگاه بودن نر و ماده حالا عجب. ببینیم چطوری در زمانی که یخبندان سردی این سرزمین ها را که میخونیم دیگه توی وندی وندیدادم میخونیم که ده ماه تابستان، دو ماه تابستان و ده ماه زمستان میشه و مارهای سیاه پدید میاد و مار سیاه در ایرانی معناش سرماست سرماس. و میدونیم که جایگاه اهریمن در ایرانی شماله، اپاختهره چون سرما از اون طرف میامده، اهریمن از اون طرف میامده و اینی که ایرانی ها خب، وقتی شما با این معضل مواجه میشین چی نجاتتون میده آتش دیگه, آتش دیگه خدمتون بگم که زندگی بر جانداران سخت شده بود حتی بیم نابودی آدمیان و های جانوری و گیاهی پیش اومد به جمشید گفته میشه که ببینین متن رو براتون میخونم چی میگه میگه در آنجا ور بساز هر یک از چار برش به درازای اسپرسی یک واحد اندازه گیریه. حالا حدودش رو تعیین کردن چقدر. و تخمه های رمه ها، سطوران، مردمان و پرندگان را بهدانجا فراز بر. بهدانجا بزرگترین، برترین و نیکوترین تخمه های نرینگان و مادینگان روی زمین فراز بر. تخمه های نرینگان آدم، چار رستنی های گوناگون روی زمین را با هم جفت جفت کن. جا. بدانجا تخم همه جانداران که بر این زمین بلندترین و برترین و خوشبوترین فراز بر و جفت جفت گرد کن و از میان نارفتنی برای ایشان که مردمان ماندگار در آن روزگارند و آنگاه جمشید ور بساخت یعنی پناهگاه زمینی و هر یک از چاربرش را برای زیستگاه مردمان و برای جای گاوان و گوسپندان در آنجا فراز برد تازایند به درازای یک هانسر این هم یک واعد اندازهگیر دیگه است و در آنجا مرقزاران برویانید همیشه سبز و خرم و همیشه خوردنی نکاستنی و در آنجا ها برپای داشت و در فراز اشکوب و فراز از او و پیرامونه آن یک همچین دجی درست کرد و حالا جالبه که اینا می دونستن که می تخمه ها رو از بدن جانوران جدا و با هم جفت کنن تو متن دیدین اشاره بله. شده نمیخوایم وارد چیزای چیزهای تخیلی بشیم مبانی رو اطلاع داشتن دقیقا اصلا یه جا... جایی که در واقع برای مسئول ماندن از خطرات اون بله. است یخمندان حتی ما در, در همون اسطوره ها داریم وره جم کرد دقیقا, دقیقاً نامش که... جم کرده وره ب... جم کرده که اتفاقا یه قلعه هست تو ورامین اسم قلعه ایرش که گفته میشه یکی بله از, بله بله از جاهاش اصلا اونجا بوده اصلا بله, بله قلعه ایرش معروفه بله اصلا نام این ور جمع کرده بله ور بله کسی کلمه ورامین ها اصلا گفته میشه از این گرفته شده بله بله, بله, بله اصلا نام وارنا که میدونی که توی حروف شرقی یعنی دقیقاً ورامین و وارنا بله یک ریشه دارن ریشه اوستایی دارن بعد جالبه که اینا تو بند 37 هفتش ما میخونیم که ببینیم اینا که میدونستن که تخمه نرین و مادینه ویژگی‌های بد را هم منتقل میکنن خب حالا عجب. این چی گفته گفته بدانجا یعنی تو اون جایی که درست کردی راه مده تخمه های گوش پشت گوش سینه بی پشت یعنی سترون خل دریوک دیوک یعنی دیو کوچک کسویش باریش، تباه دندان پیس جدا کرده تن و هیچ از داغ دیدگان اهریمن اینا اطلاع داشتن که صف... علاوه بر صفات خوب صفات بد هم امکان انتقال وجود داره وجود داره حالا اون دیگه به ریزش ما اینجا نمیپردازیم من میخواستم به شما بگم که چند هزار سال پیش نوع نگاه تا همین صد سال پیش تو غرب نوع نگاه بله نریینگی یعنی مدینگی اینو واقعا جوانای ما اگه میخوام برن آمریکا برن بله. اما با این اطلاعات برن با این سرفکندگی و خجلت واقعا نرن اونجا بدونن و برن اشکالی نداره برن سان زندگی کنن اما این چیزا رو خوبه که بدونن رسانهای ما که خدا رو شکر لال از بیخ و بون ها. هیچی اصلا انگار این چیزا رو نباید بگن اصلا نمیدونن که بگن دقیقا. این چیزا دکتر باید به اطلای جوونا برسه بله ولی بله خب ارزش شود که در شاخه های علوم مختلف چون الان مثلا ما میریم مثلا یک دانشکده مثلا زیستشناسی شناسی دانشکده فیزیک بله. دانشکده مدیریت حتی دانشکده های علوم سیاسی حقوق تمام متونی که از همون ترم اول داره تدریس ترجم می ترجمه است بله مثلا به ترجمه شده بیه متنی ترجمه شده میدن دست دانشو دست استاد این میده میده میره آخره ترم میخونه و یه نمره‌ای میگیره و میره بل. بدون اینکه مثلا از محتوای چیزی آگاه بشه اینکه مثلا در داخل همین تمدن در داخل همین آب و خاکی که زندگی میکنه علمی بالاخره تولید شده از اون آگاه بشه بدون ما چقدر نسخه خطی که همینجا دارن تو قفسه ها خاک میخورن دارن این چند صد سال کار بکنیم هنوز هم نتونیم هنرش رو دقیقا بله مثلا شما نگاه کنید یا استادیمون داشتیم میگفت که الان مثلا اندیشمندانی مثل هگل کانت تمام آثارشون چه گفته چه نوشته چه تمام آثارشون اومده بسیار مجموع آثار شده ما مثلا حتی در مورد فارابی هم ما تا حالا جمع نکردیم که اینا رو مثلا مجموعه آثار بکنیم که مثلا یک نگاهی بکنیم بازنویسی بکنیم آثارش رو و ببینیم که با در مقایسه با اندیشمندان دیگه اندیشمندان یا فلاسفه دیگه چه حرفی برای گفتن داره اینو در واقع تا حالا نداشتیم ما خیلی متشکریم از حضور باید. شما اگه وقت برنامه اجازه بده من یه طرف بحث جدیدی بکنم و ببینیم که میشه بله طرح برنامه طرح کر... بحث کرد یا نه ظاهرم دو سر بیشتر فرصت نداریم ولی من خیلی خلاصه وار در ادامه بحثشون این بحثی که الان هم شما با هم دیگه در واقع بله. پیش بردیم تا حدود حاشیه بوده چون مسئله تاریخی ما خواهیم بله برای خواهیم دستیم برای این قسمت حاشیه هستش در ادامه بحث انتقاد از داروین یه بحثی در حال حاضر در بین زیستشناسان در طول دو قرن اخیر مطرح شده که آیا اساساً زیستشناسی داره یک قانون هست، قانونمندی هست یا نه. هر که در واقع ما نگاه میکنیم مثلا خود داروین در کتاب منشأ انواع بیش از 106 بار از قوانینی صحبت میکنه که فرایند زیستشناسی خاصی رو هدایت میکنه. ولی از سال 1963 اسمارت این دارومت مطرح کرد که زیستشناسی فاقد قانونه بحث های زیادی درباره وجود یا عدم وجود قوانین توی زیستشناسی دربر گرفته از دیدگاه اسمارت دیوید اسمارت زیستشناس معروف آمریکایی، یک قانون طبیعت بایستی به لحاظ زمانی و مکانی فاقد محدودیت باشه و به هویت خاص ارجاع نداشته باشه مثلا این گزارش شرطی که اگر در حجم ثابت دمای گازی رو افزایش دهیم، فشاران افزایش مییابد بیانگر یه قانون طبیعته با. مثلا اینکه در صد درجه آب به جوش میرسه یه قانون با. طبیعیه زیرا ام از نظر مکانی و زمانی محدودیتی نداره و فاقد هویت خواستی یعنی برای همه گازها صادقه یعنی برای همه آبها صادقه حالا با درجه هایی بوده مثلا بعضی جاها گفته میشه که مثلا توی قطب شمال توی قطب جنوب مثلا توی ام um, درجه مثلا ولی خب اختلاف خیلی اندک هستش لذا خود دکارت هم میگه میگه که وقتی شما بگید دو به اضافی دو نگید 4 بگید انشاءالله چهار الله حالا با لفظ خودش. حالده. چرا چون که میگه که اگه شما مثلا دو کیلو پنیر از یک مغازه بگیرید دو کیلو پنیر از مغازه دیگه بگیرید اینا با هم که وزن کنید دقیقا چهار کیلو نمیشه شاید بشه چهار کیلو مثلا 50 کرم شاید بشه مثلا سه کیلو مثلا فلان گرم. فلسفی کرده. اینجا همی همچین در واقع وجود داره. ولی او اسمارت معتقده که اون قانونمندی که تو برخی قوانین طبیعی هستش این توی زیستشناسی وجود نداره من حالا میترسم وارد بحث بشم ما نرسیم لذا اینو همینجا من خاتمه میدم و ادامه بحث رو به برنامه بعدی منتقل میکنم و امیدوارم که در قسمت بعدی دیگه یواش یواش برسیم به این نقد بیقانونی بودن زیستشناسی رو تموم بکنیم فکرم در قسمت 19 و 20 هم یواشواش برسیم بره. به انسانهای اولیه که دیگه بره. وارد بحث تاریخی بشیم بحثای شیرین اونجا که در واقع جذابیت در واقع بحثت بحثت اونجا هم های در واقع سمعی برای شنونده هم داره و مباحث جدیدی که با اون تاریخی که توی دانشگاه ها تدریس میشه شاید تفاوت زیادی هم داشته باشه و مناقشه و باشه اونجا شروع بشه متشکرم من شرمندگان عزیز که این قصر از برنامه رو گوش دادن قسمت 18 هم, هم در اینجا به پایان میرسه تا آغاز قسمت 19 هم شرمندگان عزیز را به خداوند متعال میسپاریم خداوند یارو نگه دارتون